به نام خداوند کیوان و گردان سپر این پنجمین روایت خود از شاهنامه را به استاد بزرگوار دکتر جلال خالقی مطلق پیشکش می کنم که سی سال رنج فراوان برده است تا درستترین و آراسته ترین نسخه شاهنامه شاهکار ابرمرد فرهنگ و هنر و تاریخ ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی را فراهم کند با سپاس از این استاد بزرگوار شادمانم که از این پس با استفاده از نسخه فراهم شده ایشان شاهنامه را روایت میکنم و دیگران که از شما هم میهنانی که تا اینجا مرا همراهی کردید فراوان سپاس گذارم که براستی ادامه کار را ممکن ساختید هموطن شما سعید قائم مقامی در چهار روایت پیشین با شما از فردوسی بزرگ و زندگی افتخارآمیزش گفتم از نخستین پادشاه کیومرث گفتم که بنیاد پادشاهی را گذاشت از خوشنگ نبیره او گفتم که آتش را کشف کرد و جشن سده یادگار اوست از تخمورس دیو بند گفتم که دیوان را یکسره تار و مار کرد و آنها به او و مردمش خواندند و نوشتن آموختند بانگاه از جمشید بزرگ گفتم که پایه‌های تمدن ایران را بریفت و نوروز را بنیاد گذاشت و سپس گرفتار قرو شد و کوس خدایی زد و از ذه که تازی گفتم که جمشید را به عرد کرد و هزار سال تیرگی و تباهی برای ایران به همراه آورد از کاوه آهنگر بزرگ گفتم که پیشبندش درفش کاویان شده بر زهاک شوری. و از فریدون گفتم که یاری کاوه زهاک را در دماوند به بند کشید و 500 سال پادشاهی کرد. و در دوران پادشاهیش سرزمین پهناور ایران را به سه پادشاهی و بین سه پسرش سلم و تور و ایرج بخش کرد. از آزمندی سلم و تور گفتم که بر ایرج رشک و حسد بردن و خون او را ریختند کرد و از چهر گفتم که از دختر ایرج زاده شد و از سلم و تور انتقام خون ایرج را ستاد و سر بریده آنها را برای نیای خود فریدون فرستاد. برایتان روایت کردم که فریدون انقدر بر سرخای بریده سفرزندش عشق ریخت که خداوند بر او رحمت آورد و او را به سرای آرامش بود و منوچه جانشین نیا شد و اینک از یکصد و سال پادشاهی منوچه برای تن خواهم منوچهر یک هفته با در دو چشمش پراو و رخش زرد بود و هشتم بیامد منوچهر شاه به بر نهادن کیانی کلا همه جادوییها ها افسون ببست بر او سالیان انجمن شد دو شست ایرانیان با شکوه و شادی فراوان تاجگزاری منوچهر را جشن میگیرد و پادشاه پس از تاجگزاری در برابر همه بزرگان و دلاوران و سردودمان سخن می گوید. منم، گفت، برطق، دردان سپر. همم خشم و جنگ است و همداد و زمین بنده و چخ من است. سر تاجداران شکار من. امام دین و هم پر رهی زدی امام بخت نیکی و دست بدی یه بعض دریا در یاد و دست من است دم آتش از بردشست من است بدان راز را بد دست کوتاه کنم زمین را به چین رنگ دیبه کنم اما این هنر یکی بنده هم. جهان آفرین را ستاگنده هم. به دین 120 سال پادشاهی ششمین پادشاه از پادشاهان پیشدادی ایران آغاز می شود روزگاری قرق در اقتدار و آرامش نسبی. در این روزگار است که ماجرای شگفتی در گوشه ای از قلمرو روی گسترده پادشاهی منوچه رخ می دهد این ماجرا در نیم روز یا سیستان و زابلستان آغاز میگردد سرزمینی که سام دلی بر آن فرمان میراند فردوسی بزرگ این ماجرا را چنین روایت کند سام پسر نریمان یل نامدار ایران زمین فرزندی نداشت و همیشه نگران با خود میاندیشید پس از او چه کسی بر عریقه فرمان روای زاغلستان تکیه خواهد زد تا آنکه خداوند نیایش های او را پذیرفته به او از زیباترین همسرانش پسری میدهد که هنگام زاده شدن با همه سلامت و خوشرویی موی سر و اندامش یک سر سپید است. پس خروش و ولولهی در شبستان سام به راه که چگونه این خبر را به سام بدهیم که خداوند به تو پیر سرفرزندی داده است کنون پرش که داستان به پیوندم از گفته ماستان نگه کن که مرساب را روزگار چه بازی نمودهی پسر گوش داد نبود ایچ فرزند مرسام را دلش بود جوینده کام را نگاری بودن در شبستان اوی ز گلبرگ رخ داشت و از مشک مون از آن ماهش میده فرزند بود که خورشید چهره بر اومد ز مادر جدا شد بدان چند روز نگاری چه خرشید گیتی فروز به چهره نکو بود برسان شید ولی کن همه موی بودش سپید پسر ز مادر بر این گونه زاد نکردن یک هفته بر شبستان نام نامور پهلوان همه پیشان خورد کودک نوان کسی یل را نیارست گفت که فرزند پی آمد از خوب جفت همسر ندیمه‌ها و کنیزکان سام با آنکه یک هفته از تولد نوزاد گذشته است، خبر زاده شدن او را به سام ندادند تا آنکه دایه‌ای پیر دل به دریا زده به نزد سام رود و به او آگاهی میدهد که خداوند به تو پسری داده است، زیبا، سالم، خوشندام تنها عیب و آهوی نوزاد این که موی سر و اندامش سپید است دایه به میگوید بر صاب روز فرخنده با دل بزگانان او کنده با پس بر یل در یکی پاک پور آمد از ماخرو تنش نقره پاک و بهشت بر او بر نبینی یک اندام زشت از آهو همون کش سپید است موی چنین بود بخش تو ای نام جون. سام با شنیدن این خبر به شبستان خیش می روی. و چون کودک را به اون نشان از آسمان و زمین شکفه می کنند بود آمد از تخت سام سوار به پردندر آمد سوی نوبهار چو فرزند را دید مویش سپید به بود از جهان سر به سر نامید سوی آسمان سربراورد راست عبا کردگارو به پیگار خواست ای برطر از کاستی، به هیزان فزاید که تو خواستی اگر من گناهی گران کردم وگرکیش احریمان من آوردم به پوزش مگر کردگار جهان به من بر شایدن در نهان. سام همچون شیری زخت خورده خاش که می و قرش خشمالودش در کالارهای کاخ او شنیده می شود به پیچت همی تیر جانم زشد به جوشت همی در دلم خون گرد از این بچه چون بچه احرمند سیه پیکر و موی سر چون سمن چو آیند و پرسند گردن کشان چگویم از این بچه بدشان چگویم که این بچه دیر چیست؟ حلنگ دورنگ است گر بربری است از این لنگ بگذارم ایران زمین نخوانم بر این بوم و بر آفری تنها راه گریز از این ننگ یا ترک خاک ایران است و یا آنکه چنین کودکی را باید از خود دور کند اندیشه اینا بخردانه و احریمنی به فرمود پس تاش برداشتند از اون بوم و بر دور بگذاشتند به جایی که سیمور را خانه بود بدان خانه آن خورد بیگانه بود نهادن بر کوه و گشتند باز بر آمد بر این در چنان پهلوانزادی بیگناه ندانست رنگ سپید و سیاه پدر مهر و پیوند بفکند خار جفا کرد با کودک شیر خار. سام که خردش منکوب و پای مال خشمش شده بود فرزند بیگناه و خردسال خود را در دامنه کوه البرز رها میکنه کوهی که بر یکی از بلندترین قله‌های آن سیمرغ بزرگ کنام و نشیم و لانه دارد. بانگ شیبن و زاری کودک رها شده در کوهستان تنینانداز است. آفتاب بیرحمان بر او می‌تابد و مرد بر بالای سر کودک سپید مود در حال پرواز است. سیمور را بچه شد گرسنه به پرواز برشد دمان از گنه یکی شیر خاره خروشنده دی. زمین را چو دریای جوشنده دید ز خاراش گهواره و دای خاک کن از جامه دور و لب از شیر پاک به گردندرش تیر خاک نجم به سربرش خورشید گشته بلند پلنگش بودی کاشتی ما و باب مگر ساگه یافتی زافتا سیمورد پرنده پرشکوه که بر فراز عبها در پرواز است کودک بینوای اصیر در پنجه مرگا میگیرند به زمین آمده او را به چنگ گرفته به کنام آشیانه خود میبرد تا کودکانش او را بشکرد شکار کنند و خوراک خود سازند اما خداوند بزرگ را درانه دیگر بسید. میزد توانا خواستار آن است که کودک زنده بماند. برای او بوش و یا سرنوشت دیگری جز ما در پیش است پس ناگهان سیمرغ در دلش به کودک مهری احساس می کند و نه تنها خود و جوجکانش از خوردن کودک پرهیز می که او را از خوردنی های خود از نازکترین گوشت شکار خوراک می دهند. اود آمد از آب سیمرغ و چنگ بزد برگرفتش از آن گرم سن ببردش دمان تا به البرز كوه که بودش بر آنجا کنامه گرود سوی بچگان برد تا بشكرند بدان ناله زار او نمگرند ببخشود گزدان نیكیدهش همه بودنی داشت اندر روش نگه کرد سیمرغ با بچگان بدان خرد خون از دو دیده چکان شگفتی بدون بر فگندند میر بماندند خیره در آن چه، شکاری که نازکتر آن بدون بدو داد تا او به لب زمان می گذرد کودک را در آشیانه خود از خون و گوشت شکار می و کودک بزرگ و بزرگتر می شود. کودک رها شده جوانی بلند بالا و کوه پیکر می شود که شانه های په می دارد و کمری چون قرف چون میان تهی باری کاروان هایی که از دامنه های گذر کرده اند با شگفتی تمام از جوانی سخن میگویند که با موی نقرگون بلندش که بر شانه های به چابکی از فراز سخری به سخری دیگر بر بلندای های البرز به این سو آنسو می رود. و به این سان خبر شگفت زنده ماندن کودک به گوش پدر به گوش ساب می رسد بر اینگونه تا روزگاری دراز برآورد و دارند بگشاد راز چونآن کودک خرد پر مایه گشت بران بر آن کوهبر بر ها گذشت یکی مرد شد چون یکی زاد صرف برش کوه سیم و میانش چو قرفه. نشانش پراگنده شد در جهان بدونیک نیک هرگز نماند نهاند ب سام نریمان رسید آگهی از آن نامور پور بافرهی سام با شنیدن گزارش کاروانیان در مانده میاندیشد آیا فرزند او زنده مانده است آیا این جوان شگفتانگیز های بلند البرز همان فرزند اوست تا آنکه شبی در خواب رویای شگفتانگیزی دارد چنان دیب که از کشور هندوان یکی مرد بر تازی اسبی دوان فراز آمدی تا به نزدیک سام سواری سرفراز و گرد و خمام برا مشده دادی به فرزنده بود بران برز شاخه برون من بود چو بیدار شد موبدان را بخواد و از این در سخن چند گونه براد به دیشان بگفتان چه در خواب جوزان جزان هرچه از کاردانان شنید گفت گویید؟ گفت این داستان خردتان بدین هست هم داستان موبدان میگوید آیا باخرت میخواند که کودکی ناتوان و رها شده در کوهستان از پنجه مرد گریخته باشد و آنها او را سرزنش میکنند هر هران کس که بودند پیر و جوان زبان برگوش آدند بر پهلوان بر سنگ و برخاک شیر و پلنگ چه ماهی به آبندرون با نهنگ همه بچه را پروراننده ستایش به یزدان رسانندن تو پیمان نیکی دهش بشکن چنان بی گنه بچه را بفکنی به یزدان کنون سوی پوزش گرای که است بر نیکوبت رهنما رویای شگفتانگیز سام ادامه دارد بار دیگر و شب دیگری سام به بستر خواب میرود در خواب مؤبدی و مرد خیرتمندی او را سرزنش میکنند که چگونه پهلوانی هستی که مردی دایب و نگهدار فرزند توست و اگر موی سپید داشتن آهو و عیب و ایراده است نگاه کن تو را موی صورت و سر یک سر سپید است ای مرد ناباک ناپاک راد دل و دید شست ز شرم خدا تو را دایگر مرد شایسته ای پس این پهلوانی چه بایسته ای گراهوست بر مرد موی سپید تو را ریش و سر گرد چون خنگ بی پس از آفریننده بیزار شو که در تند هر روز رنگی است نو سرگر به نزد پدر بود خار قانون هست هر برده کردگار زو مهربانتر به دودایه نیست تو را خود به مهرندرون مایه نیست تام ترسیده از گناه خیش و شرم سار از خداوند به جستجوی پسر گمشده برمیخیزد با بزرگان و سرداران و نزدیکان خود به همان جایگاهی در کوهستان میرود که فرزند نوزاد خود را سالیان پیش رها کرد کوهی به فلک کشیده که بر بالا ترین آن نشینی ای. باخت از چوبهای شیز و صندل و عود به چشم میخورد که بیگمان نشیم و آشیانی سیمو آشیانی چون کاخی سرما آسمان تشیده بر فراز قلی بلند آشیانی دست نیازده چو بیدار شد بخردان را بخان سران سفه را همه برمشان بیامد دمان سوی آن کوه سارد که را کند خواستان سران در سریایکی یکی کوه دید که گفتی ستاره به خواهد کشید نشینی از او برکشید بلند که ناید زکیوان برو برگذر فرو برد از شیز و سندل امون یکندر دگر بافته چوب او بدان سنگ خارا نگه کرد سام بدان حیبت مرق و حول کنام یکی کاخ و تارکن در سماک نه از رنج دست و نه آب و خاک ابر آفرین ننده کرد آفرین به مالی درخسارگان بر زمین کزان در او کوه و, و مرق آفرین زخارا سرندر سورینا کشید بدانست تو است توانا از برتران برتر است اینجا از فرازان قله دست نیافتنی با شکوه هرچه تمام ترسی مرد و در کنارش جوان بلند بالای مقروری که موهای نقرکونش را باد به این سو آن سو میبرد خاموش به دامن حالکو چشم بودند سام به هر سو نگاه میکند راهی به سوی آن نشیم و لانه و سی مرد و پسر گمشداش نمیاد آیا این همه خود یک آسمون خداوندی است بانگ رسای سام در کوهستان تنین اندازد او با خداوند سخن میگوید که ای ازدان پاک اگر این جوان فرزند من است اگر این جوان از پشت من است و اگر مرا خواهی بخشید راه رسیدن به سیمر و فرزندم را هم همرار كنی راه برشدن جست و کی بود را دد و دام را بر چنان جا گفت ای برتر از جایگاه ز روشن و ز خورشید و ماه گر این کودک از پاک پشت من است دست تو مبه گوهر رهبی من است از این برشدن بنده را دست گیر مرین بی گناه را تواندر پزید سیمور دانا و آگاه است. او نماینده عظمت و اراده خداوند است او راه گشا و چار ساز است او صدای سام را در دل کوه شنیده است او میداند که سام از پی فرزند به این کوه سارا است سیمور میداند که هنگام جدایی او از امانتی است که خداوند سالیان پیش در این کوه به او سپرده است پس با پور ها سخن بگوید به او میگوید یه رفتن رسیده است گفت با سا. ای دید رنج نشینی مکنم پدر سامیل پخلوان جهان صرف راستر کسمیان مهان به دین کوخ فرزند جوی آمده است تورا نزد او آبروی روی آمده است روا باشد اکنون که بردار امد. یا زار نستی که او آرمد اما فرزند سام که سیمور او را دستان زند نام گذاشته است جدای سیمور را دوست نمی دارد قمگین است گریان است شکفه می کند آیا از من سیر آمدستیم نمیدانی که لانه تو نشیم تو فرخندگاه و فرخند جای من است به سیمور بنگر که دستان چه گفت سیرا آمدستی هماناز گفت نشیم تو فرخندگاه من است دو پر تو فر کلاه من است اما سیمور به داستان میگوید قمگین مباش تو به سوی تخت و تاج پادشاهی میروی و خاهیدی خوخانه پدری را بیشتر از نشیم و لانه من دوست خواهی داشت با این همه من همیشه و همه تو هستم پری از پرهای من را با خود ببرم این گر تخت و گاه ببینی و رسم کیانی کلا مگر کی نشیمت نیاید به کار یکی آزمایش کن از ابا عبا بر یکی پر من همیشه همی باش در فر من که در زیر پرت بپروردم عبا بچه گانت گر سختی بر آورند گر از نیک و بد گفتگوی آورند بر آتش برفكن یکی پر من همان در زمان فرمن همانگه بیایم چو ابر سیاه بیازار تارم بدین جایگاهسا دل دستان را شاد میکنند او را برداشته و آسمان پرواز میکنند تا نزد پدر بر زمین گذارد دلش گشت پدرام و برداشتش گرازان و ابراندر افراشتهش سام کودک رها کرده خیش را باز یافته است سیمرغ فرزند را جلوی پای پدر بر زمین می‌گذارد. سام به سیمرغ ادای احترام می کند و به پسر می نگرد. نوزاد ناتوانی که اینک جوانی برومند و خوب چهر و توانمند شده است و تاج فرمان روای و پادشاهی را شایسته است سام در همان کوهستان فرزندش را زال زر نام می‌گذارد و با او پیمان می که به جبران آنچه چه او روا داشته از این پس هران چه زال آرزو کند برآورده سازد ز پروازش آورد پیش پدر رسیده به زیر برش موی سر تنش پیلوار و درخ چون بهار پدر چون به دیدش به و برد سر پیش سیموغ زود میایش همی بافرین بر پزود سرا پای کودک همه بنگری همی تاج و تخت کی را سزید برا بازوی شیر و خورشید رو دل پهلوان دست شمشیر جو دل سام شد چون بهشت برین بران پاک فرزند کرلافرین به من ای پسر گفت دل نرم کن گذشته مکن یاد دلگرم کن منم بنده پاک یزدان پرست از این پس که آوردم باز دست گفتم از خدای بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم ستو بجویم هوای تو از نیک و از این پس چه خواهی تو چونم سزد هنشا یکی پهلوانی قبای بپوشید و وزكود بگذار پا سواران همه نعره برداشتند به دان خورمی راه بگزاشتند به شادی به شهراندرون آمدند آمدن پهلوانی فوزون در قلب پادشاهی ایران این خبر که سام دلاور فرزند رها شده خود را باز یافته است با شگفتی بازگون شد پادشاه بزرگ ایران منوچه با شنیدن این خبر شادمان شده از پسر بزرگتر خود نوزر میخواهد که به دیدار سام رفته از سوی پادشاه به او شادباش گفته سام و پسر باز اش را به پایتخت تخت ایران قرار یکایک به شاه آمد این آگهی که سام آمد از کوه با فرحی بدان آگهی شد منوچه شاد بسی از جهان آفرین کرد یا، بفرمود تا نوزر نامدار شبد تازیان پیش سام سبار کند آفرین کیانی بروی بران شادمانی که شاد بود بفرمایدش تا سوی شخیار شبد تا سخن خواد کند آشکار سام با شادمانی زار را آراسته و آمول پایتخت پادشاهی ایران میاد. آورد. خود از سردار بزرگش سام و فرزند او استقبال کرده در میان شادی مردم پایتخت به کاخ پادشاهی ایران وارد میشوند مانت برگاه بنشست شاد، کلاه بزرگی به سربر نحا. به یک دست قارن به یک دست سام نشستند روشن دل و شادکام پساراست زار را پیش شاه به زرین عمود و به زرین کلاه گرازان بیاورد سالار با شگفتی بماندن در اون شهریار یار بدان با بالا و آن خوب چهر تو گفتی که آرام جان است و میر چون این گفت مرسام را شهر یار. از من تو این را به زنهار دار به خیره از هیتروی به کس چادمانمش را جز به دود که فر کیان دارد و چنگ شیر دل هوشمندان و آهنگش. سام در این دیدار شاهانه تمامی آنچرا که بر او و بر پسرش زار رفته است از زاده شدن و رها شدن فرزند از پرورده شدن او در نشیم سیمور و از جستجو و یافتن فرزند برای پادشاه باز میگویدن شاه شادمان و شگفت زده از اون که بر سام و زال رفته است آگاه می شود. اما پادشاه کنچکا و آن است که بداند آینده این پرورده سیموک چیست؟ بفرمود پس شاه تا مؤبدان ستاره شناسان و هم بخردان بجویند که اختر سال چیست بران اختر و بخت سالار چیست چو گیرت بلندی چه خواهد بودن؟ همان داستان از چه خواهد زدن ستاره شناسان همان در زمان ز اختر گرفتند یک یک نشان بگفتند با شاه دیهین دار شادان بزی تا بود روزگار که او پهلوانی بود نامدار سرفراز و خوشیار و گرد و سبا بشنی شاهین شاه شد دل پهدبان از قمازات شد منوچه شادمان از آیندی زال به سام خلعت و پیشکش بزرگی میدهد و فرمان تازهی به نام او می كه که تأچید دوباره بر پادشاهی او بر قلن روی فرمان رو و چون این همه به پایان میرسد سام و زال به زابر باز میکرد هنوز چندی از بازگشت سام به زابل نگذشته است که از منوچه شاه برای او فرمان میرسه باید به گرگ و مازندران سپاه برد پس سام بزرگان زابل را فرا میخواند و پسر خود زال را به آنن سپاره جهان دیدکان راز کشور بخواه سخنهای بایست چندی براند، چنین گفت با نام بر بخردان. ای پاک و خوشیار دل مو بدن، است فرمان هوشیار شاه که لشکر همیراند باید براه. سوی گوکساران و مازندران، همیراند خواهم سپاهی گران. دل و می در بماند همین، مجه خون دل و فشاند. بگاه جوانی و کنداوری یکی ساختم بی داوری به سرداد یستان بیم داختم ز بی دانشی عرج نشناختم گران مای سی برداشتش همان آفریننده بود ماشتش بپرورد تا شد چو سر به بلند مرا خار بود مر را عرج من. تو انگام بخشایش آمد فراز دهانداری ازدان به من داد باز بدانید که این زین هار من است به نزد شما یادگار من است گرامیش دارید و پندش دهید همه راه و رعی بلند شدید سوله زهال کردان رو داد و دهشگی رو فرجام چنان دان که زاول خانه دا. جهان سر به سر زیر فرمان توست تو را خانمان باید آبادتر دل دوستداران به تو شادتر کلید در گنج ها پیش توست دلم شاد و غمگین به کم بیش توست زاد از رفتن پدر غمگین است میگوید همیشه سرنوشت او را تنها و جدا از نزدیکانش خواسته است به سامان گفت زال جوان چون زیست خواهم منی در نوان جدا پیش در زین کجا داشتی مدارم گر آشتی کسی با گنه ز مادر بزاد زاد منانم سزد گر بمانم زدان گهی زیر چنگال مرقندرون چمیدن به خاک و مزیدن زخون زگل بهری من به جز خاردی بدین با جهاندار پیکار نیست اما سام به پسر میگوید دلت را از درد خواه خالی کن ولی بدان که اخدر شناسان گفته‌اند جای تو آنجایی است که مردم تو سپاه تو و تخت و تاج تو آنجاست جای تو زابل است پدر گفت پرداختن دل سزاست به پرداز و برگوی هرچت هواست ستاره شمر مرد اخترگرای چون این زد تو را زختر نیکرای که ای در تو را باشد آرامگاه همی در سپاه و همی در کلا گذر نیست بر حکم گردان سفه همی در به باید نیک کنون گرد را بر گروه سواران و مردان دانش پجور و بشنوز هر دانشی بی هر دانشی را مشی. خرد و زبخشش همه دانش و داد دادن بسید به گفتین و برخواست آبهای کوز هوا قیرگون شد زمین آگنوس. خروشیدن زنگ و هندیدران برامد زده بیزه پرنسران سفه خود زنگ بنهاد بود یکی لشگری ساخته. جان تو. زبان میگو سرعت. ازال در نبود پدر از موپدان و آموزگاران و دلاوران میخواهد تا به او آین رزم و بزم و پهبانی و کشورداری بیاموزند و دیری نمی پاید که به تمامی دانشهای خیش آراسته می شود. او اینک دلاوری بزرگ و فرمانروایی آگاه شده است روزی بران می شود تا به گوشه و کنار سرزمین پهناور زیر فرمانش سفر کند سرنوش چنین خواست تا در این سفر به سرزمین هندوان و کابلستان برسد سرزمینی که فرمان روا و پادشاهان مهراب نام دارند مردی بزرگ و بخشنده که همه ساله به زابلستان و سام باج و خراج می دهد. چنان بود که روزی چنین کرد رای که در پادشاهی به جنور زجار برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بودشان رای و ززاول به کاول آن زمان گرازان و خندان و دلشاب یکی پادشاه بود محراب نام زبردست و با گنج و گستربکان چو آگه شد از کار دستان سام زکاول بیامد به هنگام بام ابا گنج و اسبان آراسته غلامان و هر گونه خواسته زال مخراب را در اردوگاه خود می‌پذیرد و میهمانی باشکوهی در خیمه و هرگاه پرشکوهش برپا می‌شود در این نخستین دیدار دو فرمان و دو دلاور خوشایند هم می و هر یک دیگری را در دل می ستاید و چون محراب به کاخ خود باز می گردد زال به همراهان میگوید شایسته تر از این مرد چه کسی کمربند فرمانروایی بر کمر می تواند همین گفته بحانه می شود تا یکی از همراهان زال به او بگوید چه نشسته ای؟ که این مرد مهراب کابولی در کاخ و شبستان خود دختری دارد که چهرش زیبا تر از خورشید است <تصفيق> چون مهراب برخواست از خانزال زال لگه کرد زالندران برزویان چونین گفت با مهتران زال زن زیبند ترزین که بند یکی نامدار از میان نهان چونین گفت با پخلوان جهان پس پرنی او یکی دختر است که رویش ز خرشید نیکوتر است ز سرکا به پایش به کردار آج بروخت چون بهشت و به بالای ساد دو چشمش به ساند نرگس به باگ موج تیرگی برده از پر رزاد به است سر سرآواسته سرا راسته خرا و, را و دامشو و خواسته زال که در تمامی سالهای عمرش عشق را نشناخته و دل به کسی نباخته است ندیده چنان مهری به دخت مهراب در دل احساس می کند که تمامی شب نه چیزی میخورد و نه چشمانش به خواب می رود براورد مرزال را دل به جوش چنان شد که از رفت آرام و خوش شب آمد پرندیش بنشه زال به نا بر گشت می ها هنگام بار دیگر مهراب به دیدار زال به اردوگاه او می روید. زال او را پذیرفته و از دیدارش ابراز شادمانی می کند و به او می گوید هرچه آرزوداری از من بخواه دل زال شد شاد و بنواختش و زن انجامن سر برافراختش بپرسید از من چه خواهی بخواه؟ زه تخت و زه مهر و زه تیغ و کلام به دو گفت محراب، ای پادشا سرف و پیروز و فرمان رو با. مرا آرزو در زمان یکیست چان آرزو بر تو دشخار نیست که آیی به شادی سوی خان من چه خورشید روشن کنی جان من. مهرب به سال میگوید آرزوی من آن است که به کاخ من آمده میهمان من باشی اما زال میداند داند که مہراب با خاندان زهاج که ایرانیان بیدادگریهای های او را از یاد نبردن پیمند و بستگی دارد پس او میگوید چنان چه پدرم سام و پادشاه ایران منوچه بشنوند که من میهمان بود پرستی شدم خاشگین می شود. جوزین هر چیز دیگری میتوانی از من بخواهیم. چنین این داد پاسخ. این رای نیست. به خانتان در مرا جای نیست. نباشد بدین سام هم داستان. همان شاه چون بشتبر داستان که ما می گساریم و مستان شدیم سوی خانه بودپرستان شدیم. جز این هرچ گویی تو پاسخ دهم ده به دیدار تو رای فرخ دهم ده با این همه مهر زال در دل مهرا بیشتر جای می گیرد. و چون از دیدار زال به کاخ خود باز می گردد و هنگامی که همسرش سیندخت با تمسخر از اون پرسد این پهلوان کیست که به سرزمین ما آمده درست است که در لانی مرگی پرورده شده آیا لانه مران را بر تخت پادشاهی ترجیح می دهد محراب چنان زال را ستایش می کند که رودابه دختر اونیست که شاهد گفتگوی پدر و مادر خویش است نمیه دلبستی زال می شود و پرسید محراب را ز خوشاب بکشاد انام را چون رفتی امروز و چون آمدی که کوتاه با دست و دست بدی چه مردی مردیست این تیر سرپور سام همی تخت کامایدش گر کنام خوی مردمی هیچ دارت همی پی نامداران سپارت همی چون این داد محرا پاسخ بدون ای سرو سیمین بر خوب رو بگیتی در از پهلوانان گرد پی زال را کس نیاورند. دلشیر نر دارد و زور پید و دستش بکردار دریای نیل روخش پش مراننده ی ارقبان جوانسال و بیدار و دولت جوان به کینندرون چون نهنگ بلاست به زینندرون تیز چنگشده هاست از آهو همان کش سپید است نگوید سخن مردم ای جو چو بشنید رودابه آن گفتگو برفون ود نارگون کرد دلش گرشت پر آتش از مهرزان از او دور شد رامش و خردخان چنان وجود رودابه را در خود میگیرد گیرد که ناگذی پنج کنیزک و پرستنده و ندیم خیش را به نزد خود میخواند و از آتشی که وجودش را میسوزاند با آنان سخن میگوید بدانید هر پنج و آگاه بید همه ساله با بخت همراه بید که من آشقیم چو بحر دمان از او شده موج تا آسمان پر از پور سام است، روشن دلم به خوابندرن کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن دل و جانم از رنج پرداختن تنی زکان رودابه درمی یابند این اشقیست که در جان و تن رودابه جای گرفته است و پند و اندرس بیهوده است پس بران آن بانوی خود را به محبوبش زال برسانه فروردی ماه هست دشت توشید از گلهای خود بود. ندیمه های رودابه هر یک خود را چون گلی می و در افت می گل بهانه ساده است برای ها که خود را به اردوگاه زال برسانند که در کنار رود آبی برپاست که سیلاب های بهاری در آن پرستنده برخاست از پیش اول سوی چاره بیچاره بنهاد بود. به دیبای رومی بیاراستند سر زوف بر گل بپیارستند برفتند هر پنج تا رودبار زهر بولی و رنگی چه خرم بخار مه فرورین و سر سال بود لب رود لشگرگه زار بود همین گل چدند از لب رودبار روخان چون گلستان و گل در کنار نگه کرد دستان سه تخت بلند بپرسید چین چی گل پرستان چند چون این گفت گویند با پخلگان از کاخ مخواب سر روان پرستندگان را سوی گلستان فرستد همین ماه کابلستان زال در پی آن است که در باری رودابه از کنیزکان او آگاهی خان بدست آورد پس به بهانه شکار به کنار رودخانه می‌رود. مرغی را به تیر میزند و غلام خود را در پی مرغ شکار شده می‌فرستد که در کنار کنیزکان رودابه به آب افتاده است. کنیزکان با غلام زال از زیبایی بانوی خود سخن می‌گوید. و قلام زال با آنها از دلاوری سرور خود حرف میزند آنگاه زال با آنها پیام می دهدد که بمانند تا پیشکش هایی بدهد و به این بهانه آنها نزدیک می شود و از آنان درباره رودابه پرسش ها می کنندند بود خامید تا گل ستان با امید خورشید کا پری روی گل رخ بوتان تراز برفتند و بردند پیشش نماز سپه بپرسید از ایشان سخون بالا و دیدار آن بن ز گفتار و دیدار و رای و خرد بدان تا به خویه به خورد بگویید با من یکایگ سخن. به کجی نگر نفت اندیچ بند اگر راستی تان بود گفتگوی نزدیک منتان بود آب رود اگر هیچ چجی گمانی برم به زیر پی پیلتان بسپرم ندیمه های رودابه پس از ستایش و سپاس از از زیبایی های بانوی خود میگویند. و زال هر دم آشغتر و شیفت تر و از آنان برای دیدار رودابه چار جویی میکنند کنیزکان به زال پیشنهاد میکنند که شبانه با کمند از دیوار کاخ رودابه بالا رفته او را در کاخ دیدار سپه بود پرستنده را گفت گرد سخنهای شیرین و آوای نرم اکنون چه است؟ با من بگو یکی راه جستن به نزدیک او که ما را دل و جان پر از مهر اوست همه آرزو دیدن چهر اوست خرامت مگر پهلوان با کمن به نزدیک دیوار کاخ بلند کند حلقه در گردن کنگره شود شیر ا از ار بر خوبان و برگشت زال دیر یازان دیریازان به بالای سال زال شیفته و شیدا بود شیفته و شیده به اردوگاه بازگشت کنیزکان رودابه در بازگشت به کاخ فراوان از خوبی و برازندگی زال نزد رودابه سخن گفتند و به او آگاهی دادند که زال امشب با کمند از دیوار تو بالا آمده تو را دیدار خواهد رودابه دستور میدهد کاخ او را برای پذیرایی از زال بیاراید کاخ پرشکوه رودابه به شاهانه ترین و شمدانها و گلها و خوشبوترین عطرها پیاسته و آراسته میشود دل در سینه رودابه آرام ندارد از سو زال بیقرار انتظار شبهنگاه را میکشد سرانجام خرشی در پس کوخ های کابل فرو می و شب شب دیدار فراب می رسد از کنیزان رودابه دستان سام زال را خبر می گام رسیده است زال پیاده به سوی کاخ رودابه می و رودابه پنهان از چشم نگهبانان به بالای بام کاخ خود رفته انتظار آمدن زال را میکشد چو چه تابنده شد ناپدید در حجر بستند و گم شد کن. پرستنده شد سوی دستان سام که شد ساخته کار بگذار کار سپه بود سوی کاخ بنهاد رو چنان چون بود مردم جوف جو. برآمد سیاه چشم گل به بام چو سر و سهی بر سرش ماه چون از دور دستان سام سوار به دید آمدان دختر نامدار دو بیجاده جاده و آواز داد شاد آمدی ای جوان مردو را درود جهان آفرین بر تو با خم چرخ گردان زمین تو با پرستنده خور دل و شاد با چنانی سراپای کو کرد یاد پیاده به دین سانز پرده سرای برنجیدتی جیدتین خسروانی دو پا. زپخ بود که از آن گونه آبا شنید نگه کرد رخ رخلا بدید شده بام از آن گوهر تابناک به جای گلش سرخ یا قوت خاک چنین داد پاسخ ای ماه چه درودت ز من آفرین از سپه. چه ماه شبان دیدن در سماک خروشان بودم پیش یزدان پاک همی خواستم تا خدای جهان نمایت مرا روی تو در نهان کنون شاد گشتم با آواز تو بدین چهر گفتاره با ناز تو یکی چاره راه دیدار جون چه پرسی تو بر باره و من به کوه زال به رودابه میگوید چگونه از حال من پرسی که تو بر بالای بانی و من پای دیوار و رودابه به زیباترین راه عشق خود را به زال ابراز میکند کند گیسوان بافته خود را که چون رشته های کمند بلند و اطراقی است از فراز کنگره و دندانه های کاخ به زیر می و میگوید گیسوان مرا بگیر و به نزد من آن حریروی گفت سپه بچنود زه سر شعر گلنار بکشاد سو، کمندی گشادو ز سر به بلند که از مشک از آنسان نپیچد کمند در خم و مار بر مار بر بران قبقبش نار بر نار بر بدو گفت بریاز و بر کشمیان بر شیر بکشای و چنگ کیان بگیریم این سیه از یک سو هم. ز بحر تو باید همین گیسو نگه کرد ظالم دران ماه روی شگفتی بماندن دران روی و مول چنین دار پاسخ این نیست دار چنین روز خورشید روشن مباد که من دست را خیره در جان زنم بدین خست دل نوک پیکان زنم آنگاه زال بر کنگری بام کاخ کمندی انداخته خود را به بام و به کنار رودابه میرساند رودابه دست او را گرفته از بام به داخل تالار کاخ میبرد و تا سردا هر دو از اشق و دلدادگیشان سخن میگوید اما هر نوشی را نیشی همراه است. و گاه هر لذتی را دردی در پی زال میداند نه پادشاه ایران منوچر و نه حتی پدرش سام با این پیمند و ازدواج و عشق و دلدادگی سر همراهی نخواهند داشت چه رودابه دختر محراب است و محراب از بستگان و تبار که خونریز زال از این نیش و از این درد با محبوبه خود آن دیدار فرخنده ناگزیر سخن میگوید با این همه هر دو با هم پیوند میبندند که هر خطری را برای رسیدن به هم به جان بخرند سپه بود چون گفت با محروم ای سر و سیمین پر از رنگ و بود منوچه چون بشنود داستان نباشد بدین کار هم داستان همان سام نیوم بر خروش کفن آزد و برمناید به جوش ولیکن سر مای است و تن همه خار گیبم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز سه پیمان تو نگذرم شوم پیش یزدان ستایش کنم چویزد پرستان نیایش کنم مگر کودل سام و شاه زمین بشوید ز خشم و ز پیکهار و چین جهان آفرین بشنود گفتم من مگر کاش کارا شود جفت من به دو گفت بود من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین که بر من نباشد کسی پادشاه جهان آفرین بر زبانم گوا جز از پخلوان جهان زال زر که با تخت و است و بازید و فرق. و دینسان پیمان عشق دو دل بسته می شود جایی که عشق پای میگذارد خرد از در دیگر رفته است زال و رودابه میدانند به راه دشواری گام نهادند که گذر از آن با رنج و درد بسیار همراه خواهد بود پس تمامی شب اندیشه کنان چنان یکدیگر را میبوسند و چنان سخن میگویند که گویی این آخرین دیدار هست همی هر زمان مهربان بیش بود خرد دور بود آز در پیش بود چون این تا سپیده برآمد ز جای برآمد برامد ز پرد پس ماه را شاه پدرود کرد بر خیشتار رو برش پود کرد زبالا کمندن درف گنزار فرود آمد از کاخه و چون سر میزند زال با دلی مملوب و از عشق و سری لبریز از پرسش و تردی به خیمه و خرگاه خیش باز می گرد. زال موبدان و بزرگان و سرداران و همراهان را فرا میخواند نخوست خداوند را ستایش میکند کند وانگاه از ارادی خداوند سخن میگوید که دوام انسان را بر جفت قرار دادن آنها برانهاده است وانگاه از زناشویی و فرزندار شدن سخن می راند. و در پایان از عشقش به دختر مهراب و سندوخت پادشاه و ملکه کابل پرده بر دل از من می داشت تو برده خرد شما بن چه درمانی نه نگفتم من این تا نگشتم قمی به مغز و خرد در نیامد کند همه کاخ مهراب مهر من است زمینش چو گردن سپهر من است دلم گشت با دخت سیم دخت رام چه گویید باشد بدین رام سا شبد تیز گویی منو چه شا. جوانی گمانی برد گرگنا چه محتر چه کهتر چش و جوف جوی سوی دین و آین نهاده است روی بدین در را جنگ نیست چه هم راه دین است و هم نه نیست چه گوید کنون موبد پیش بین چراند نند اندر موبدان و بزرگان بهزال میگویند گرچه مهراب از تبار زحاکه است اما خود مردی نیکندیش و خوب رفتار است و پیوند زال با دختر او ننگی نیست و بزال پیشنهاد می کنند به پدرش سام نامه نوشته و از او بخواهد که از منوچه شاه اجازه چنین پیوندی را بگیرد چرا که منوچه شاه برای سام احترام فراوان دارد و درخواستش را میپذیرد زال پیشنهاد مشاورین خود را پذیرفته نویسنده را پیش میخواند و به پدر نامه می نویسد و از رنجهای کودکی و نوجوانی خود سخن می‌گوید و به یاد سام می‌آورد که در کوهستان به او پیمان داده بود که همیشه خاستهای او را برآورده سازد ز مادر بزادم بدون دنسن که دیل گردون به من برس خار هستیم پدر بود در ناز و خز و پرند مرا برده سیمرغ بر کوه هند همی پوست از باد بر من بسوخ زمان تا زمان خاک چشمم بدون همی خواندندی مرا پور سام به اورنج بر سام و من بر کنام چویستان این راند اندر بوش بر این گونه پیش آوریدم روش. یکی کار پیش آمدم شکن که نتوان ستودنش بر انجمن پدر گر دلیر است و نر اجده اگر بشنود راز کهتر رواست، من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتش تیز بریان شدم برنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگریت همی انجمن اگر چه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمات دم چه فرماید دکنون جهان پهلوان گشایم از این رنج و سختی روان که من دخت محراب را جفت خیش کنم راستی را به آیین و کیش به پیمان چنین رفت پیش گروه چو باز آوریدم کو که هیچ آرزو بر دلت نکسدم کنون اندرین است بستید سام در در ساران پس از تنبیه سرکشان در شکارگاه سرگرم شکار است که نامی پسر خود زال را دریافت میکند و مهرس نامه برداشته نامه را میخواند. آنچه در نام آمده است خشم او را بر نیامدیسد. سام با خود میاندیشد اگر با درخواست پسرش مخالفت کند. پیمان شکنی کرده است و بعدهایش به زال گفتار خامی پیش نبوده و اگر با ازدواج و پیوند او با رودابه موافقت کند حاصل این پیوند و زناشوی چگونه فرزندی خواهد بود زال پرورده مرغ و رودابه دختر ای چون مهراب بازمانده زهاج چه احریمنی از این پیوند زاده خواهد شد سخنهای دستان یک ها بخواند بخاند به بر جای و خیره بماند پسندش نیامد چونان آرزوی دگرگونه بایست شورا بخون چون این داد پاسخ آمد پدید سخن هرچی از گوهر بد سزید چون ژیان باشد آموزگار چون این کام دل دست از روز کار همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای دل شخیاران سر انجامن شود خام گفتار و پیمان شکن و اگر گویم ماری و کامت رواست بپرداست دل را به دانچت حواست از این مورد پرورده وانگی ساد چگونه براید چگوی نشان سام درمانده که با درخواست زال چه کند ستار شناسان را فرا میخواند و با آنها می‌گوید از اختران و ستارگان جستجو کنید که از پیوند زال با رودابه از تبار زخاک چگونه فرزندی پدیدار خواهد شد ستار شناسان پس از روز درازی جستجو با لب خندان به نزد او باز می‌گردند سامن نریمان ستاره شمر چنین گفت ای گرد زرین کمان تو را مژد از دخت محراب و بزرال که گردند هر دو تو حمال و از این دو هنرمند پیلی بیاید ببندد به مردی میان. جهانی به پاینده را به تیق نهد تخت شاه از بره پشت میق ببرد پی بدسگالان ز خاک به روی زمین بر نماند مقاک نسکسار ماند نمازندران زمین را بشوید به گرز گران به خوابندر آرد سر درد من. ببندد در جنگ و راه گزند بدو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خرام و نوی خنک پادشاهی تهنگام هنگام اوی زمانه به شاهی برد نام او بشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذرفت از ایشان سپاس ببخشیدشان بیکران زر و سین چه آرامش آمد به هنگام بیم آری موبدان و اخترشناسان به سام مژده میدهند که از پیبند زال و رودابه پسری زاده خواهد شد که در بزرگی پشت و پناه ایرانیان خواهد سام شادمان فرستادی به کابل میفرستد تا به زال بگوید که پدرش با چنین پیوندی همراه است. در کابل زال در انتظار پاسخ نامی خیش از پدر است. سرانجام فرستاده باز می و پیام همراهی سام را به زال می دهن. زال شادمانه کنیزکی را که بین او و رودابه پیام رسانی می کرد فرا میخواند و به او میگوید به رودابه آگاهی بده که سام بزرگ با پیوند ما همراه به بدو گفت نزدیک رودابه شو. بگویش که ای نیکتل ماهنو سخن چون ز تنگی به سختی رسید فراخیش را زود بینی کلید فرستاده باز آمد از پیش سام با شادمانی و فرخ پیام وسی گفت و جوشید و زد داستان سرانجام هم گشت هم داستان سباک پاسخ نامه زن را سپود زن از پیش او باز گشت و ببو به نزدیک روداب آمد چوباد به دین شادمانی را مجده داد. رودابه به فرخندگی این پیام برای زال هدایایی شاهانه می پرستد. اما وقت بعد سیندخت مادر او زن پیام رسان را با هدایا می بیند. و پس از پرسش و پاسخهای فراوان پی میبرد دخترش رودابه چیزی را رو از او پنهان میکند. پس رودابه را به کاخ خود میخاند و از او شکبه میکند که رازش را از مادر پنهان کرده است رودابه شرمنده از مادر سرفرو میفکند و سخت میگرید و از عشق خود به سال پرده میگیرد به مادر چنین گفت ای پر خرت همین مهر جان مرا بش کرد دستان به کابل بماند چنین مهر را اویم بر آتش نشان چنان تهنگ شد بر دلم بر جهان که گریان شدم زاشکار و نهان نخواهم بودن زنده بی روی او. جهانم نیرزد به یک موی او. بدان کو مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتیم دستش به دست آگاه رودابه تمامی ماجرا را با مادر در میان می‌گذارد و به او آگاهی می‌دهد سام بزرگ نیز از این عشق آگاهی یافته و با پیوند زال و رودابه سرساسگایی دارد سیم پس از آگاهی از عشق زال و رودابه با خود میاندیشد چه شایسته است اگر دخترش همسر زال دلاور پور نامدار سام شود آنگاه با این اندیشه خولناک به خوابگاه میرود که اگر منوچ شاه از این عشق آگاه شود چه طوفانی برپا می شود محراب که همسرش را غرق در اندیشه و نگران می بیند سبب پریشانیش را جویا می شود حسین به او میگوید بدان که روزگار بر مراد ما نمیگوزد رو برد و سر صحی داد خم به نرگس گل سرخ را داد نم که گردون به سربرد چنان نگذرد که ما را همی باید ای پرخرن، چنان دان که رودابه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام به برده است روشن دل او راه یکی چارمان کرد باید نگاه بسی دادمش پند و سودش نگرد دلش خیره بینم همین روی زر چو بشنید بر پای جست نهاد از بر دست شمشیر دست تنش گشت لرزان و رخلاش ورد پر از خونجگر لب پر از باد س. همی گفت رود را رود خون به روی زمین برکنم هم کنو چنان دید سندوخت برپاکش است. کمر کرد برگردگاهش دو دست چنین گفت کس که کهتر اکنون یکی سخن بشنو و گوش دارنده کی آن پس همان کن که را یایدد روان را خیرت رهنما به بپیچید و انداخت او را به دست روشی براورد چون پیل منست مرا گفت او... چون دختر آمد قدید به واقعستشن در زمان سر بود نکشتم نرفتم به راه نیا کنون ساخت بر من چنین کیمیا همان بیم جان است و جای ند چرا بازداری سر ابراز اگر اگر سامیل با من و شاه بیایند بر ما یکی دستگاه ز کابل براید به خرشید دود نه آباد ماند، نه،, نه کشت و درود آره، مهنا پس از شنیدن سخنان همسرش این دست کشتن رودابه دخترش را دارد و چون سیندخت او را از این کار باز میدارد به همسرش میگوید کاش مثل پدرانم که تازی بودند دخترم را کشته و زنده به گور کرده بودم چون اگر پادشاه ایران و سام از این عشق و دلدادگی آگاه شوند به سوی ما کشیده از کابل جز خاک و خاکستر چیزی باقی نمی گذارد. سین او مشدگانی شدگانی می می‌دهد که سام از این عشق آگاه است و سر همراهی دارد و برای همین از گورکساران برمیگردد. و مگرنان که پسران فریدون بزرگ با دختران شاه یمن که تازی بودند پیوند زناشویی بستند. زال نیز به راه فریدون می روید چنین گفت سیمدخت با مرس بان که این در مگردان به خیر زبان که این آگهی یافت سام سوار. به دل ترس و تیمار چندین مدار و از گرکساران به دین گشت باز گشاده شدست این سخن نیست راست چون این گفت محرام ای ماخروی سخن هیچ با من به کشیم چون چونین خود که در خورد باخرت که مرخواد را باد فرمان برد مرا دل بدی نیست درد ای دردمند اگر ایمنی منی یا از گزند چه باشد که پیوند سام سوار نخواهد ز احباست آقنده ها دو گفت سیم سیندخت ای فراز به گفتار کشی مبادم نیاز گزند تو پیدا گزند من است دل درد مند تو بند من است چونین است تو این نزد من شد درست همین گمانی مرا از نخست اگر باشد این نیست کاری شگفت کزان بردلندیش باید گرفت فریدون به سر به یمن گشت شاه جهانجوی دستان همین جوست راه. اما مهراب با دلداری های همسرش سیندخت آرام نمیگیرد او میداند اگر سام هم از روی مهر پدری با پیوند زال و رودابه سازگاری نشان دهد مانوتيه پادشاه ایران که دشمنی آشتی ناپذیری با زهاکیان دارد هرگز اجازه نخواهد داد سال پسر سام پهلوان بزرگ میخنش ایران با هودابه با ای از دشمن ایران من شاه زمین سر ما کند زین سخن پر نماند بر بوم و نمام و باب شبت هست رودابه با رود آب